اول این است که داخل کتاب در دا مورد تلویزیون هست که برای تلویزیون دناب مولانا رحمه الله گفتن که جز دناها هست و اهل تصویر جهنمی هست. اول این است که خود تلویزیون بگیم بعد اهل تصویر بگیم تصویر چرا بگوین چون برای این سوال دیگه خیلی زیاد برای مثل این سوال متعلی دوربین دوربین هست جرای ما روشن هم هست این مکم توضیح می دیم اول همین ما راشن هست دیگه پس ما معتقدیم جایز هست چون اگر می گفتی باید همه شما گوشی ها از جیبه های تو بیرون اندازید چون همه گوشی ها که می خرید دارند و کلاس بسیار بالا و توانی بالاتی سیستو هم می خرید و سیستم وقتی دوربینش اولی سوال هم دوربین میگه چند هست این سوالی هست نه پس میفرستید اول در مورد خود تلویزیون بگیم تلویزیون گناه هست گناه تلویزیون از چه لحاظ هست؟ خاطر موسیقی هست یک موسیقی قطعا بالاتفاق جمهور امت حرام هست موسیقی اتفاق گناه هست و هیچ جایگاه موسیقی ندارد ما موسیقی حلال هم نداریم حالا بعضی میگه این آرام بخش است این خانانی خیلی آرام میخواند. خیلی غمگین می‌خونه، شاد می‌خونه، چجوری می‌خونه؟ هر یا بعضی میگن که داره آقا موسیقی اپ در قرآن می‌خونه، پیغمبر تعریف می‌کنه، فلان تعریف می‌کنه، جایز است، نه گناهش بدتر شد حالا به صلا قرآن کسی کسافت بذاره، پاک می‌شود. نه وقت از این طرف ورایات الهی نجاستی بگذارسته. پس اگر آیات الهی یا سیرت نبی کاری با موسیقی بیان بکنه، گناهش بدتر است. برای این دیگه سلیغی نیست این جواب علت گناه موسیقی چون که هر انسانی در بدنش داره جوهرهای مختلفی هست تا هر بدل جوهرهای مختلفی هست و انسان چنو آمالی رو انجام بدهد همون جوهر فعال میشه ورده حالا این چجور جوهر فعال میشه بر شما میگه به طور رسال اول این است که در موسیقی جوهرهای منفی بدن که به طرف گناه میکشند و پایین پای میآورند، اینها در این قسمت فعالیت میکنند، اینها خودشو فعال میشن و بدن دیگه آمادگی داره و اینها رو میتزیرده. به طور مثال، این که بدن فعال میشه نگاه کنید وقتی قاری قرآن زیبا میخواند، خیلی زیبا میخوانه. در انگیزه دروری شما جوهر شما فعال میشه قرآن خوندن بلد نیستید اما با اون داری زمزمی میکنید داری با اون به آرامش میرسید و در ذهن خودتون داری همون نقرآتو در ذهن خودتون مرور هم میکنید چگونه مرور کردید اینجا اتصال فاعل شدن جوهرهای بدنن دارن با خود همون صدا و خودقرآت داره میشه و وشبار داره به حرکت در میاورن خیلی جاہا یا جا وقتی که از شجاعت کسی بیان می شے حس سجاعت شما فعال میشه شے میشید می شید اینها که برا انتحار می کنے ہمی کارار می اون برنامه بدر اونها دران فعال می کنن از میگن اینقدر میگن می گان می قادر در کہ فعال می وقت ویچ فعال شد انفعال می شے نشان میده دے و حرکت می تا اینجا که کسی اختلاف نظر ندار ندارد نه، چون خیالات نمیتونید اختلاف داشته باشید، چون همه تو تجربه کردید، وقتی روش میشه همه تو نیست دارید دیگه هر انسان نیست داره قابل انکار نیست. به اینی در صورتی بعدی، در صورت, در صورت اگر فیلم مبتزلی رو کسی نگاهی کنه، فیلم مبتزی رو جانی نگاهی کنه، هیچ حرکتی نیست، لمسی نیست، تقانی نیست، اما اون او برای عباسلہ هورمون های پر داره فعال, بیشن فعال, بیشن فعال, بیشن فعال بیشن دار میشن فعال میشن فعالی چه همونجا نشسته دست نرسیده فقط با چش داره ارزا میشه. چون ارزا کرد همه چیز داره نگاه میکنه داره فعال میشن اون جثب بدنش در موسیقی به همه چیز چیزها رو فعال میکنه جوهره منفی رو فعال میکنه و اینها دیگه داخل حدیث داریم که خود موسیقی نفاق در قلب می و نفع او خود جوهر اونو منندی به صورتی که بر زمین آب به پاشید بذر نیرویاده به همین صورت با موسیقی نفع قلب فعال میشه تو حدیث اومده نفاقو رشد میدهت اگر همون جوهر منفی دارن فعال میشن اولین اثر موسیقی هست و موسیقی کار میکنه فالالا اختیار داری آرام بخش گوش خودی یا غیر آرام بخش گوش خودی اون که در راحت شاد میخوند یا یعنی خیلی غمگین میخوند به هر صدت گوشکوری جایز نیست مگر بدور موسیقی باشه جایز هست موسیقیش جایز نیست و گناه بعدیش اضاع وقت هست اضاع وقت ناجایز هست توز رغبیات هست داخل سوره لغمان لحو الحدیث آمده ممنوع شده لحوه الحدیث رو جرد داستانه هایی هستند که بعضی می آوردن داستانه های دروغین و از امته گذشته برمی تا مردم رو از اسلام دور نگه بدارد این کار هم اینجا صورت می گیرد و به همین صورت بعد هم در بعض دیگه نگاه کردن نامحرم هست توسط مردم و حاله صورت زیادی داره هم آیا این که عقصش نوع دوربینش که گفته ایک اهل تصویر جهنمیان آیا تصویر چرا رو حالا تصویر تو وقتی میگن جهنمیان تصویری که ممنوعیت دارد دو نوع تصویران یک تصویر آن تصویری هست که مانند ارونسک اونو درست میکنن سایدار هست مجستمه ها مجستمه ها ما یک گروهی دنبال مجسمه فروشی هستن میرن زیر خاکی بیرو میکنن مجستمه ها رو میفروشن در حالی فروختن مجسمه جایز نیست، حرام هستین. پولش حلال وحشیه. ایا چون چی دستش شما افتاد، اون آب کنید همون تلاش رو فروشید. اما پول داخل خود مجسمه هست، داخل نیست. اینجا که مسئله دین و بیاد با خودی اسلام مجسمه حالا دیگه، اونجا 10 دام ما اینجا خاکی میبینیم. اسلام میذاره نه، اینجا جایز نیست، فروختن مجسمه جایز نیست. حالا اینجا یکی از نوع مجسمه هست. مجسمه ناجائز با فروخته نیش نیست و درست کرده مجسمه الا اروسکر کوچه که بعد دختران باز بازی میکنن باز برای اوناها جواز داره حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نها درست میکرد با پارچه خودش بازی بیکرد نبی کریم هم میدید اصلی درست کردی بود فردا گو این چیه اصلی گو اینا تو پراشم فرموز نگه اصبا میپره گفت بکه خبر نداری که اصل سلیمان میپرید از آیشی به نبی کریم گوامو داستان که تخت روان بود چون قبل کوچیک بود این چیزو اونجا فرمودن اما نبی کریم چیز چیزی نگو خودش میگه من باهمین درستکار کوچیکی درست میکردن باز میکردم اون مختصرا معمولی نه یک یک پیش افت دارن شهر میکنن رقصم میکنن راه میرن می موسیقی اینا نه اینا که دارن موسیقی دارن میراخته اینا نه همون ساده ساده ها برای بچه کوچیک راه دارن چقدر که موازی باشی بس یه یعنی نوع تصویری که حرام است این داخل اون شامل هست نوع دوم تصویر همون نقاشی های هستن با دست می کشن. نقاشی می کشن. اون حرام هست و اون اهل تصویر همین چیز رو داخل احادیث ممنوع قرار داده زیرا چرا ما داریم این دوربین در اون وارد نیست چرا وارد نیست؟ اول این است که در خود دستل احادیث آمده که احیو ما خلقتم که دنده کری چیزیش ما خلق کردید، اون آفریدی، تصویر خودتون خلق کردی. اینجا خلق نیست در دوربین، اینجا حبس هست. حبس هست خلق با حبس فرق میکنه. حبس این است که حالا ما دلیل دوربین استادیم، این داخل اون خود عداسیها داخل دوربین، این تصویر ما و اونجا نگاه میدارد. و چیزی رو خالق نمی کنه. ما اقا به هر صورت باشه به این صورت زیباتر هم نمی کند جوانتر هم نمی کند پیرتر هم نمی کنه. هر چه باشه همون چیز رو همون اینجا نگه میدارد. این هست حبس حبس کردن با خالق کردن فرد می کند پس اونجا در حدیث آمده احیا ما خلقتم اون چیزی که خالق کردید اونو زنده بکنید پس این رو این حبز هست مانند آینه, جلو آینه می ایستید. و در آینه و خودت رو بیلی این اکاس صورت شما در آینه هست و اون داخل آینه هست دیگه شما که نیست اونجا شما هستید نه این اکاس شما هست اونجا داخل آینه شما نیستید این اکاس شما اگر شما باشید بر آینه تیر بزن شما زخم میشید هرگیست اینجوری نیست فقط فقط همین تصویر اونجا نگاه می‌داره پس چیزی در آحادیس آمده خلق آمده, آمده. دلیل بعدی رو برای شما. بعدی این است که داخل اسهیه بخاری حدیثی هست نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم داخل خواب حضرت عایشه رو دیدند هنو عایشه در کار نبود هنو ازدواجی نشودی بود داخل خود به گهواری بود فرشتہ آوردند فرمودند که داخل خواب این این همسر شما هست حالا میگه خواب دیده اما لفظ اونجا بعد راضی نبی کریم فرمودن که صورت تو عکس تو رو من نشان دادم گفته این امرأتو که این خانوم تلمی میشه فرمود امکان من دلله امزهی اگر از طرف خدا هست اون رو پس اجرا بکنید من میخوام اونجا عکس که حضرت آیش رو نبی کریم در خواب نشان داده همون صورت نصالی رو آوردن صورت نصالی یا حفظ صورت با خلق صورت فرق کند این نظر من نیست که من اینجا میگم بلکه این نظری خود مفتیان ازام جهان هست من هم نزد شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی در تکمیل فتوالمله تا اونجا که تصویر فوتوگرافی اینجوری آورده و بعض هم یک جماعت از علمای مصر هم همین رو دارند و عموماً اکثرا دارن به این متصویر دوربین را بیرون میکنن از چیزهای دیگه اون چیز ممنوع است همون خالق کردن هست حالا این تست آیا تلویزیون داخل کارتون هم گناه است تلویزیون داخل کارتون مجسمه نیست نیست. اگر کسی اونجا نماز بخون نمازش نمیشه نه اینجوری نیست اگر کسی تلویزیون کسی رو شکست باید زمانتشو پرداخت بکنه تست معذر باشه میریید جماعت تو مییل مله جووی شدی حالا میگه همه بنا از زمینم بزن اونو بشکر این کارو نکنید. این کار نکنید, نکنید, نکنید اگر شکستی بعد زمانات رو پرداخت بکنید این زمانات در چرا چون که استفاده درست از این جائز هست. استفاده درست که استفاده درست بکنه در بعض موارد خوب است و راه دارد. این چیزی هم گفتن نظر من نبودین. ایک از, از ساعتی در درلو کراچی همین نظر سال کلاس فرمودن.